جمعه شونزده آگسته دو صبح به سختی خوابم برد یه بطری و نیم شراب و به زور خوردم تا خوابم ببره لرزش دستام آروم بشه از جا پریدن وحشت زده غیرعادیم ماروم بگیره اما واقعا تأثیری نداشت تا چشمام گرم می شد از خواب می پریدم. شک ندارم که حس می کردم اون تو اتاق با هامه چراق روشن کردم و نشستم به صده هایی که از خیابون میومد گوش کردم. رفت و آمد مردم توی ساختمون فقط وقتی هوا یواش یواش داشت روشن میشد اونقدر آروم شدم که خوابم ببره دوباره خواب دیدم که تو جنگلم تام باهام بود اما هنوز ازش میترسیدم دیشب برای تام یه یادداشت گذاشتم بعد از اینکه از خونه اسکات اومدم بیرون دویدم سمت پلاک 23 و محکم در زدم انقدر وحشت زده بودم که حتی فکر نکردم ممکنه آنا اونجا باشه و از دیدرم عصبانی بشه هیچکس پشت در برای همین روی تیکه کاغذ یادداشت نوشتم و انداختمش تو صندوق نامه ها. نمی که آنا ببیندش. به نظرم بخشی از من دوست داره که اون ببیندش. یک یادداشت سر وسته بود. بهش گفتم باید راجب به اون رو صحبت کنیم. اسم اسکات نمی چون نمی خواستم تام بره اونجا و باش رو برو بشه. خدا میدونه چه اتفاقی ممکنه بیفته. تا رسیدم خونه به پلیس زنگ زدم. اول دو شراب خوردم تا آروم بشم. خواستم با کارگاه بازرس گسکیل صحبت کنم اما اونو گفتن که در دسترس نیست برای همین بالاخره با ریلی حرف زدم اینو نمیخواستم میدونستم گسکیل مهروون ترهش گفتم منو تو خونه زندانی کرد تهدیدم کرد ازم پرسید که چه مدت محبوس بودم؟ از صدای خشخش روی خط میتونستم صدای نفس کشیدن بیتفاوتش رو بشنوم گفتم نمیدونم نیم ساعت شاید سکوتی طولانی ایجاد شد و شما تهدید کرد. میتونی بگی دقیقا چجور تهدیدی گفت گردنمو خورد میکنه اون گفت اون گفت باید گردنمو خورد میکرده باید گردنتو خورد میکرده گفت اگه میخواست براش هیچ زحمتی نداشت باز سکوت حاکم شد بعدش پرسید گوتکت زد بهت آسیب رسون کبودم. کرد فقط کبودی. تکت زد نه چنگ زد سکوت طولانی تری ایجاد شد خانم واتسون، چرا شما تو خونه ای اسکاتیب بل بودین؟ اون ازم خواست که برم دیدنش گفت نیاز داره با هم حرف بزنه یه آه بلند کشید به شما هشدار داده شده بود شما به اون دروغ گفتین بهش گفتین که دوست همسرش بودین انواع داستانها رو بهش گفتین و بذارین خلاصه کنم اون کسیه که در بهترین حالت به شدت تحت فشاره و بسیار مضطربه این حالت خوشبینانه شه در بدترین حالت ممکنه خطرناک باشه اون خطرناکه منم هم دارم همینو بهتون میگم به سر رزای خدا باید نداره شما رفتین اونجا بهش دروغ گفتین تحریکش کردین خانم ما اینجا وسط یه تحقیق جنایی هستیم شما باید اینو بفهمین شما پیشرفت ما رو به خطر انداختین میتونستین پریدم توی حرفش چه پیشرفتی؟ شما هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشتین اون زنشو کشته من دارم به شما میگم یه عکس هست یه عکس از هر دوشون اون قاب عکس خورد شده اسکات عصبانی متعادل نیست بله ما هم اون رو دیدیم خونه بررسی شده این به سختی مدرک قتل محسوب میشه پس شما اونو دستگیر نمیکنین آه بلندی میکشه فردا بیاین اداره شکایت بنویسین ما از اونجا پیگیری میکنیم و خانم واتسون از اسکات هیبل دوری کنید کتی اومد خونه دید من نوشیدم خوشحال نبود چی میتونستم بهش بگم هیچ توضیحی وجود نداشت فقط گفتم خیلی متاسفم و رفتم بالا تو هم مثل یه بچه قهرو بعدش بیدار دراز کشیدم سعی کردم بخوابم منتظر شدم تا هم زنگ بزنه زنگ نزد زود بیدار میشم گوشیمو چک میکنم هیچ تماسی نیست ماما میشورم و لباس میپوشم برای مصاحبه دستام میلرزه مهدم فشرده میشه دارم زود میرم بیرون چون باید اول توقفی تو ایستگاه پلیس داشته باشم و شکایتمو به اونا بدم انتظار ندارم پیگیری کنن اونا اسن منو جدی نمیگیرن شک ندارم اصلا به این شکایت نگاه کنن موندم چه چیزی باعث شده براشون بیشتر از یه موجود خیالی نباشم توی راه ایستگاه نمیتونم جلوی نگاه کردنم و به اینور بر اونور بگیرم که یهو جیغ آجیر پلیس منو از جا میپرونه روی سکو ایستگاه همینجور تو جایی که میتونم به خط آهن نزدیک میشم آنگوشم رو می‌کشم روی نرده های آهنی و سعی می‌کنم خودم رو محکم نگه دارم. می‌فهمم مسخره است اما حس می‌کنم حالا که من دیدم چی کار کرده، حالا که دیگه رازی بین ما وجود نداره، چقدر درک آسیب‌پذیر بودم ترسناکه. بعد از ظهر، موضوع حالا به من نزدیک‌تر شده. تمام این مدت من فکر کردم که چیزی برای به یاد آوردن بوده، چیزی که من یادم رفته. اما نیست. من هیچ چیز مهمی ندیدم یا هیچ کار وحشتناکی انجام ندادم. من فقط اتفاقی تو همون خیابون بودم. حالا اینو میدونم و ادب و مهربونی موسرخه رو با این حال یه وزوزی تو اعماق مغزم هست که نمیتونم بشنومش. نگسکیل نه نریلی نه هیچ کدوم تو اداره پلیس نبودن. اظهاراتم و یه افسر پلیس به ظاهر لباس شخصی نوشت. حتتی میزنم این شکایت شماره گذاری و فراموش میشه مگر اینکه جسد من توی جوی آبی جایی چیزی پیدا بشه. مکان مصاحبهم روبروی خونه اسکاته اما از اداره پلیس یه تاکسی گرفتم. هیچ شانسی ندارم همونجوری بود که فکرشو میکردم خودش شغل به کلی پایینتر از سطح من بود اما به نظرم داشتن شغلی پایین تر از شغل سال گذشته یا دو سال گذشته مناسبمه. من باید دست از مقایسه بکشم. اشکال بزرگ. غیر از حقوق کم و سطح پایین بودن خود شغل اینه که همیشه باید بیام ویتنی عبور همیشه از این خیابون و خطر مواجه شدن با اسکادی یا آننا و بچهش. همیشه احتمال برخورد با کسایی هست که تو این هاشیه جنگلی هستن. یکی از دلایلی که من اینجا رو دوست دارم هم همینه. حسه روستا در هومه لندن. شاید آدم کسی رو نشناسه اما چهره آشنام. حالا نزدیک ایسکام دارم از زمینای دولتی رد میشم که می کنم دستی به شونم میخوره. بر میگردم و از پیاده رو میرم توی خیابون. هی hey, سلام. متاسفم. باز اونه. موسرخه. توی دستش یه پیمونست و دست دیگرش رو به نشانه تعارف برده بالا. نیشش بازه. ترسیدی نه؟ من واقعا باید وحشت زده به نظر برسم چون نیش بازش خوش شد. خوبی؟ نمیخواستم بترسونمت میگه تا منو دیده بوده بوده اومده طرفم و برای همین ناگهانی صدام زده و به یه نوشیدنی دعوتم میکنه میگم نه و بعد نظرم عوض میشه میگم بهت یه بده بی‌دکارم در حالی که اون یعنی اندی همونجور که به نتیجه دلخواه رسیده برای من جین و صدا میاره میگم به خاطر رفتاری که تو قطار داشتم منظورم آخرین باره روز بعدی داشتم اندی میگه باشه لبخندش کند دو تنبل است اما فکر نمیکنم این اولین پیمانش باشه ما تو باغ پشت بار روبروی همدیگه نشستیم اینجا تر از کنار خیابون حس میشه شاید این حس امنیتم رو ترغیب میکنه برای همین شانسم امتحان میکنم میگم می خوام ازت به چیزی که اتفاق افتاده بپرسم اون شبی که من دیدمت شبی که مک شبی که اون زن ناپدید شد مم. خب منظور چیه؟ نفس عمیقی می‌کشم. میتونم حس کنم صورتم سرخ شده. موضوع این نیست که تو چند بار باید بپذیری. موضوع اینه که همیشه دستپاچه شی. همیشه بی اراده عضلاتت منقبض میشن من خیلی مص بودم و یادم نمیاد. چیزایی هست که باید روشن کنم، فقط میخوام بدونم تو چیزی دیدی؟ تو دیدی که من با کسی دیگه ای صحبت کنم یا هر چیزی مثل سرمو میندازم پایین؟ زور می زنم به میز. نمیتونم به چشاش نگاه کنم. اون با زدن زانوش به پام بهم به اشاره میکنه. مشکلی نی، تو هیچ کار بدی نکردی. سرمو بلند میکنم و بهم به لبخند میزن. مهرم مس بوده. ما یه گفتگوی کوتاه تو قطار با همدیگه داشتیم. م... یادم نمیاد راجع به چی. بعدش هر دوتامون اینجا پیاده شدیم تو ویتنی. تو یه ذره نامتعادل بودی موقع حرکت. رو پله سکندری خوردی. یادت من کمکت کردم پشید تو هم دستباچه شدی، سرخ شدی، مثلا میخنده ما با همدیگه رفتیم و ما ازت پرسیدم اگه میخوای بریم بار اما گفتی باید بری و شوهرتو ببینی همین؟ نه، واقعا یادت نمیاد یکم بدتر بود نمیدونم، نیم ساعت بعد شاید من توی زمین های دولتی بودم اما یه رفیق قدیمی زنگ زد گفت اون توی یه بار اون ور خطاهن داره می میزنه بر همین مرا رفتم پایین تو زیرگذر دیدم تو اونجا افتادی به هم ریخته بودی خودتو زخمی کرده بودی یکم نگران شدم گفتم میتونم ببرمت خونه اگه بخوای اما نشنیدی تو خب خیلی ناراحت بودی فکر کنم قبلش با یارو یه بگمگویی کرده بودی اون توی خیابون بود من گفتم میرم سراغش گفتم اگه بخوای این کارو میکنم هم گفتی نه اونم فرمونو گرفت و جلوتر رفت اون با یکی بود یه زن سرت سرش یکم آه این میفته اونا با هم یه توی ماشین بودم من حد میزنم مگوتون سر این بود بچی بعد شد بعدش رفتی دیگه به نظر می یه ذره گییت شدی همچین چیزی رفتی گفتی به کمک نیاز نداری همونجور که گفتم من خودم یه ذره مست بودم برای همین گذاشتم بری من از توی زیرگتر رفتم و رفیقامو رو توی بار دیدم اینجوری بود قضیه در حال بالا رفتن از پله های آپارتمان احساس میکنم میتونم سای رو بالای سرم ببینم صدای گام‌های رو جور خودم بشنوم. یکی توی طبقه بالا منتظرمه. هیچ کس اونجا نیست ثروته. آپارتمانم خالیه. به نظر ناملموس میاد بویی نیست. اما این باعث نمیشه که اتاقامو چک نکنم. زیر تختم و زیر تخت کتیو، توی جارختی و گنجه‌ی آشپزونه رو که یه بچه‌م نمیشه توش قایم بشه. بالاخره بعد از حدود سه بار گشتن آپارتمان بیخیال میشم. میرم بالا و میشنم رو تخت و به گفتگویی که با اندی داشتم فکر میکنم. این چیزی که اون میگفت با چیزی که یادمه مطابقت میکنه. راز بزرگی فاش نشد. تام و من توی خیابون بحث کردیم. من سر خوردم و خودم و زخمی کردم. اون سری پریده و سوار ماشین شده با آنا. بعدتر برگشت دنبال من. اما من رفته بودم. یه تاکسی گرفتم به نظرم یا برگشتم به قطار نمیدونم. میشینم رو تخت و از پنجره به بیرون نگاه میکنم. موندم که چرا احساس بهتری ندارم؟ شاید به خاطر اینه که هنوز هیچ جوابی ندارم. شاید به این خاطر که که چیزی یادمه با چیزی که یکی دیگه گفته منطبقه اما هنوز احساس میکنم یه چیزی کمه. بعدش یه جرق میزنه آنا؟ تام هرگز نگفت با ماشینش با آنا جایی رفته باشه. واقعیتی که وقتی من اون زن و دیدم داشت دور میشد، سوار ماشین شد ولی اون بچه بغلش نبود ایو کجا گذاشتم وقتی هر دوتاشون خونه نبودمشنبه 17 آگست 2013 عصر باید با تام حرف بزنم تا مستقیما از چیزایی که توی سرم سر در بیارم چون هرچی بیشتر مرور میکنم کمتر درکش میکنم و نمیتونم از مرورش دست بردارم. من در هر صورت نگرانم چون در این دو روز از وقتی که از خونه اون مرد اومدم بیرون و برای تام یادداشت گذاشتم جوابمو نداده. تلفن دیشبم هم همینجور. یه طوری شده و دلم میگه که این کار آن اوناست. میدونم که اونم میخواد بام حرف بزنه به خصوص اگه بدونه در مورد اسکات و اتفاقی که تو خونش برام افتاده. میدونم که بهم کمک میکنه. نمیتونم به برخورد اون توی ماشین فکر نکنم به که بینمون بود. برای همین گوشی رو برمیدارم و شماره رو می‌گیرم. دلم آشوبه. میشه همینجوری میشه دلم انتظار شنیدن صداش مثل قدیم و پرام مهمه مله؟ تا منم آنها باید اونجا کنارش باشه اون نمی‌خواد اسممو و بیاره برای یه دقیقه منتظر میشم بهش زمان میدم تا تو بله توی اتاق دیگه و ازش فاصله بگیره می آه میکششته چی شده؟ میخواستم با حرف بزنم همونجوری که توی یاداش گفتم من؟ چی؟ به نظر عصبانی میاد. من دو روز قبل یه یادداشت برات گذاشتم فکر کردم ما باید با هم ه... من یادداشتی ندیدم آه تری کشه لعنت بهت برای همینه که ازم عصبانیه آن ورش داشته و بهش نداده چی میخوای دلم میخواد قطع کنم و دوباره شماره بگیرم دوباره شروع کنم با این جمله شروع کنم که چقدر تو روز خوبی بود روزی که رفتیم دریاچه فقط میخوام ازت یه چیزی بپرسم میپره تو حرفم. چی به نظر واقعا ازم دلخوره. همه چی خوبه؟ چی میخوای ریچل؟ تمام مهربونی یه هفته قبلش بر باد رفت. به خاطر گذاشتن اون یادداشت به خودم لعنت میفرستم. معلوم حسابی تو درد سر انداختمش. میخواسم ازت راجب اون شب بپرسم. شبی که مگاهی گم شد. آه خدایا ما در حرف زدیم قبلا یادت نیست؟ من فقط... تو مست بودی؟ صداش بلنده خشن من بهت گفتم برو خونه تو گوش نکردی سرگردون بودی با ماشین دنبالت گشتم اما پیدات نکردم آه نه کجا بود خونه با بچه با ایو بله تو ماشین باد نبود نه اما دست بردار تو رو خدا ریچل اون قرار بود بره بیرون قرار بود من موازه به بچه باشم بعدش سر سرکله ای تو پیدا شد و برای همین از راهش برگشت و قرارش رو لغو کرد و من ساعت‌های زیادی از زندگیمو با گشتن دنبال تو تلف کردم. آرزو می‌کنم کاش زنگ نزده بودم. امیدان بالا اومد و دوباره فروکش کرد. انگار یه تیکه فولاد سر تو دلمو رودم داره پیچ می‌خوره. میگم. باشه فقط من اینو یه شکل دیگه یادم میاد. تام وقتی تو منو دیدی، جایم زخمی شده بود. من من یه بریدگی روی سرم داشتم. آه سنگین دیگه ای میکشه. تعجب میکنم تو همه چیز رو یادت میاد. تو مست و کور بودی، پاتیل پاتیل، کثیف نفرت آور تلو تلو می خوردی. گلوم داره چف میشه. باز این کلماتو میشنوم. دارم ازش همون چیزای قبلی رو میشنوم، مثل روزای بد قدیم. روزای خیلی بدتر. وقتی ازم خسته میشد و عین سگ چخم می کرد و ازم متنفر میشد. به شکل خسته کننده ای ادامه میده. تو افتاده بودی تو خیابون. داشتی گریه میکردی. کاملا به هم ریخته بودی. حالا چرا این مهم شده ریچل؟ نمیتونم کلمات درستی پیدا کنم برای جواب دادن طول میدم. اون ادامه میده؟ ببین. من باید برم. دیگه به من زن نزن لطفا. ما دربارش حرف زدیم. چند بار من اینو ازت خواستم. زنگ نزن. یا داشت نزار. اینجا نیا. این آننا ناراحت نراحت میکنه. خب؟ تلفون خفه میشه. یک شنبه 18 آگوست 2013 صبح زود تمام شب پایین توی اتاق نشیمن موندم با تلویزیون روشن برای همراهی با دلدلهای ترسم که هی میومد سراغم و باز پاپاسم می‌کشید. انگار من در زمان به عقب برگشتم. زخمی که اون سالهای قبل بهم زد دوباره باز شده. نو و تازه، همه است میدونم. ساده بودم که فکر میکردم شانس دوباره باش دارم. فقط با یه گفتگو، یه چند دقیقه که در معرض مهربونیش قرار گرفتم و احتمالاً فقط یه لحظه احساسی بوده، به خاطر احساس گناهی که نسبت بهم داره. با این وجود آزاردهنده است و من به خودم اجازه دادم تا این رنجش رو ازش به دل بگیرم چون اگه این کار رو نمی کردم، اگه این حس و سرکوبش می کردمم دیگه هیچ وقت نمی نمیش همچین حسی رو نسبت بهش داشته باشم. ساده بودم که گذاشتم فکر کنه بین من و اسکات رابطه ای هست تا اینجوری کمکی به رابطه خودمون کرده باشم. برای همین من یادم ساده و بدبختم. من اینجوری هم. من نباید دیگه با کسی باشم نه دیگه نه. تمام شب اینجا دراز کشیدم و با خودم قول دادم که کاری بکنم از اینجا برم، دور بشم، یه شغل تازه پیدا کنم، برگردم به اسم دوران مجردیم، رابطم و با تام قطع کنم، انقدر محکم که هیچکس کس نتونه پیدام کنه، هیچ کس نتونه دنبالم بیاد. زیاد خوابم نباد، اینجا رو مب دراز کشیدم و دارم نقشه میکشم، هر بار بی خوابم میبره صدای تام تو سرم میپیچه انقدر واضح که انگار درست اینجا وای جلوی من، لباش رو گوشمه. تو مست و کور بودی، پاتیل پاتیل، کثیف و نفت انگیز و از می پرم شرم مثل یه موج منو میشوره شرم اما مثل همیشه قوی ترین حسه آشناس پرم قوی ترین حسه آشناپنداری چون من این کلماتو قبلا شنیدم، عینا همین کلماتو و بعدش نمیتونم این صحنه رو از ذهنم دور کنم از خواب بیدار شده بودم و دیدم بالشم خونیه توی دهنم زخم شده بود. انگار لپمو توی خواب گاز گرفته باشم. ناخونم کثیف و سرم سنگین بود. تام از همون اومد بیرون با همون قیافه آشنایی که اینجور وقتا به خودش میگرفت. گرفت. و یکم عصبانی و وحشت مثل یه سیل منو غرق خودش کرد. چی شده؟ تام بهم به کبودیه روی بازوش رو نشون داد. کبودی روی سینش رو که من زدمش. باور نمیکنم تام. من اصلاً تو رو نزدم من هیچ وقت توی عمرم کسی رو نزدم تو مست و کور بودی ریچل یادت نمیاد دیشب چیکار کردی چه چیزایی گفتی و بعدش بهم گفت که چیکار کردم و باز من نتونستم باور کنم چون هیچی از اون چیزایی که میگفت به نظر نمیومد حرفای من باشه هیچ کدومشون و چیزی در مورد چوب گلف گفت که گشپوریه توی دیوار سوراخ کرده مثل چشم کور خالی و خاکستری میمونست که هر وقت از کنارش رد میشودم ازیتم میکرد نمیتونستم حرفشو باور کنم که تا این حد خشن بوده باشم چون وقتی که یاد اون اتفاق می‌افتادم بیشتر ترس و می میومد تا اینجور کارای وحشتناکی که حرفشو میزد یا اینکه یادم بعد از مدتی دیگه نمیپرسیدم که چی کار کردم ولی اون داوطلبانه طلبانه به اطلاعم میرسون من نمیپرسیدم چون نمیخواستم جزئیاتو بدونم بعد تر از تو نمیخواستم حرفایی رو که در اون وضعیت کثیف و مس و نفرت انگیز به زبون آوردم بشنوم یا کارهایی که کردم گاهی تهدیدم دیدم که صدامو ضبط میکنه و بعدش برام پخش میکنه. هیچ وقت این کارو نکرد. مثلا مثلا های کوچیکی میکرد. بعد مدتی یادم اومد آدم وقتی اینجوری بیدار میشه نمیپرسه که چه اتفاقی افتاده فقط میگه متاسفه. متاسف برای کاری که انجام داده و کسی که هست و هرگز دوباره اینجوری رفتار نمیکنه. و حالا من اون آدم قبل نیستم. واقعا دیگه اونجوری نیستم. باید به خاطر همچین چیزی از اسکات سپاسگزار باشم چون حالا انقدر می ترسم که دیگه نصف شب برای خرید مشروب بیرون نمیرم. خیلی می میترسم. چون اینجور وقت آسیب پذیرم. من میخوام قوی بشم. این کاملا عملیه. دوباره پلکام دارن سنگین میشن و سرم داره میفته روی سینم صدای تلویزیون اونقدر کم میکنم کنم که تقریبا هیچ صدایی نداره. قلط میزنم تا صورتم رو به پشتی موبرو باشه مچاله میشم توی خودم و لافو میکشم روم و ذره ذره فرو میرم میتونم حسش کنم حس فرو رفتم به خواب و و بعد بنگ انگار زمین دهم ده باز کرد و من از جام پریدم صاف نشستم قلبم تو گلون بود من من من اون شبو دیدم دیدمش بوی زیرگذر بودم و اون داشت می طرفم دهنم با یه سیلی بسته شد و بعدش مشتش با کلیدای توی دستش بالا اومد و با برخورد فلز دندوندار درد توی سرم تیر کشید